هجاب چهره جان می شود قبارتنم خوش آدمی که از آن چهره پرده برسکنم چون این قفص نسزایه چون من خوش الهانی به گلشن رزوان که مرغ آن چمنم ایان نشد که چرا آمدم کجا رفتم دریق و در که غافل ذکار خیشتنم چگونه توف کنم در فضای عالم قدس که در سراچه ترکیب تخت بند تنم اگر خون دلم بوی شوق می عجب مدار که هم درد نافه خوتنم تراز پیرهن زرکشم مبین چون شم که سوز هاست نهانی درون پیرهنم بیا و هستی حافظ، زفیش او بر را که با وجود تو کس نشنود من که منم